سلام. امروز یک رواج در این مردم را تایدار شده که فکر میکنم بسیاری کسا که رفتن به بدین مناورن و رفتن به با زیارت بیرمبر رسول الله علیه و وسلم و نماز خوندن در مسجد نبی این جزد الحج است بسیاری کسا تو فکر میکنم در که این دولت است رفتن به بدین مناورن و رفتن به خواندن در رسول الله <تصفيق> صلی الله علیه و, و سلام و, و زیارت کردن قبر پیغمبر اسلام و رفتن به جنات البقیع خدایمی در مجموع کل مدینه منوره چیزی که است یا شامل حج نیستند یعنی اگر یک پاچی به مکلا شریف بره فرایض و واجبات و مستحبات حج کلش در مکه و مدنه ختم میشه اینا در که این فکر میگرد که والا رفتن به قبرستان ای هم جز حج است یا قبرستان خابرد در حج دیدن باز میگن حج قبول نشد خلاص نشدن تا که چهتر به مزار هم ندید به خاطر ازی که اینجا میگن از کنجا نگد نگارم قبرستان زیادت کردید حجر ناقص مان باز اینا رو دور یک به مزار شدیم. در حالی که دیگم غلط است این نارباق هست و رفتن بایان ندیده نماز خونا در مزید نبی سلام جزی حج نیست اما در هر وقت سال بنا موجه برن برن و بس مستحب است از این خاطر در ازی امروز من خدمت کارم این معلومات ها خب در صحیحان یعنی در صحیح بخاری و صحیح مسلم عن ابي هرائر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة في مسجد هذا خیر من الف صلاة في ما سواهو الا المسجد الحرام عزت ابو نماز خواندن در مزید یعنی مزید نبوی که در مدینی منوره هست درگفت خیرون من الف سالاتین فی ما این نماز فضیلتش هزار مرتبه بهتر است نسبت در دیگه مزید ها. یعنی مثلا اگر در این مزید ما شما نماز میخوایم یک درجه میگیریم ویا مثلا در جماعتی جا میخونیم بیسته درجه میگیریم در مسجد نبوی کسی که نماز میخونه سوابش هزار مردمه هزار مردمه یعنی گفت که سالات پی مسجد خیلون من صلات الف سالات پی مسجد از هزار نماز دیگر یعنی در این مسجد اگر یک سواب بگیرید از موجه هزار چنده سواب میگیریم هزار چنده سواب میگیریم یعنی نسبت در مسجد بخیلی مسجد الحرام و عمت اومد رضی الله عنهما حضرت عبد الله بن عمر رضي الله, رضي الله چی بگن میگه ان نبی صلی الله عليه وسلم قال میگه حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت صلاه تن فی مسجد هاذا افضل من 1000 صلاه فی مسواه گفت که نماز خواندن در این مسجد ما از هزار نماز یعنی در اگر جایی هزار نماز بخانی و در اینجا یک نماز بخوانی این یعنی فضیلتش بیشتر است با غیر مسجد الحرام که است فازلات المسجد النبوي كانت باشتارة رواه المسلم في حديث شريفه إمام مسلم رحمة الله عليه رواية قادمة هذا حديث الشريف الذي يقول عبد الله بن الزباير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام قبت من نماز في المسجد ثوابش از هزار نماز در دیگه مسجد بیشتر است و فی المسجد الحرام و یک نماز مسجد الحرام در بیت الله کریم خاندن افضارو من مئت صلاعتم فی مسجدی. یعنی گفت از 100 نماز نسبت به مزید مزید ازار یک ست مزید یعنی اگر در مزید یک نماز میخانه ثواب یک نماز میگیریم در مسجد النبي صل وسلم چند نماز میگیریم؟ می یعنی هزار میگیری و در بیت الله الحریمی باز صد برابر دو است که صد هزار ثواب بشه که خداوند متعال جل جلاله رو کل ما شما را نصیب بکنه که بریم و نماز بخونیم خب اخراج احمد الى امام احمد و ابن خزیما و ابن حبب حبان روایت کرده وابن جابر بن الله ان هو جابر الله الله گفت صلاه في مسجد افضل من الف صلاه في الحرام وصلاه في الحرام اللي تيجي ميجا في الحرام و يك نماز خدان الحرام افضل من 100000 صلاه في از حزار حزار نماز در حدیث امام و هذا اي والله احادیث بسیار زیاد است خب یاداگاهی قبلا که شما گفتیم اینکه گفتیم که زیارت مسجد نبی صلی الله علیه وسلم با وجود این ثوابی که مسجدش داره لا جز جزء حج هست یا نیست جزء حج نیست انا را قاعده اخلاقی با ابتدای شریف مدینه منوره نمیره حج شد یا نشد شد به خاطر اینکه فرایض حج واجبات حج سنت‌های حج مستحبات حج کلش. تا کجا ختم میشه لای بیت الله شریف چه خود پیغمبر ص دم مدینه منوره به سفر کرد برای حج کجا رفت مکی مvarphi اینالا ایناله بدعا رفتن به مسجد النبی صلی الله علیه و سلم در تمام سال سنت است چرا؟ که یک حدیث شریف است که با اغلبه لا تشد الرحاله، الا الى ثلاثتی مساجد شما سفر نکنیم، سفر عبادتی به سیم از این کنان از گفته المسجد الحرام و مسجد حاضر و المسجد الاقصر متفقن علیه یعنی حدیث شریف امام بخاری و مسلم روایت کردن یعنی سفر کردن در عبادت یکی سفر حج است بغیر ازی به قصد نماز خواندن یا عبادت کردن فقط انسان حق داره که دسته دا سه مسجد سفر رو کنه. بنیت مسجد حرام یعنی بیت الله شریف مسجد حرام است. تو میدید تکت دیره میرید من نماز بخواهم در مسجد بیت الله شریف. درست است ای ثواب دادن. که مسرق میگری ای پیسید درائی مثبت درده. یا مثلا نیت میکنیم می‌کنی، می‌کنی، ولی ما می‌رومن به نیت نماز خواندن در مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم در اونجا برو نماز بخواند، اینجا هم جایز است یعنی کرائیت میتی، این ای بیزی حلال است و نماز خواندن در بیت المقدس، که خداوند رو کن کنه از دست اسرائیلی های در صورت که او رازاد اونجا رفتن به نیت از و اگر اینسان اونجا نماز بخواند اینی تکیت تحرک میگیری اینی حلق است. بغیر نیست دیگه جا اجازه نیست. از این خاطر بسیاری ما که از افغانستان میرن به مزار شریف و تکیت که مصرف میکنن و خاطر رفتان مغرون به زیادت مزار این از دیدگاه فراموه این حدیث شریف مشروعیت ندارد. یعنی کی یعنی این پیسے تو متصرف میکنی اگر تو نماز میخونی یا عبادت میکنی یعنی نماز خواندن در مسجد مزار شریف با مصیبا این مذهب اشتباه نمیکنم پس تو این پیسے اگر به قصد من زیاد نماز خواندن نماز هم همون راهه است ما راهه نیست بقدر شده نصیب خود بکن و بیشتر جون کزین پیسے ذخیرش بر خاطر مود مناسب بدین که مدرسه حفظ قران چی شود اما تو مثلا 2030 سال میگیری میری مزار اگر به قسم نماز خواندن میره انجا نیست. اگر به قسم زیارت میری به قسم زیارتون اگر خداوند دعای شما رو میشنوه و ما درود میفرسیم به پیغمبر بر علیه یا درود میفرسیم دعا میکنیم به حضرت علی یا دیگه را خداوند نه حیی خداوند ده هر جای میشنوه اگر موقع موبایل کشف کردیم یک یعنی دوست خدا مثلا در اروپا صاحبش خاطر میگیم ولاد میگم دا موبایل داشت چیکار می دید خب موبایلی که انسان میتونه با خداوند ارتباط بگیره سجده است سجده چیست؟ یک نفر برسان کرد گفت که این نمبر چیز چند است؟ نمبر تلفن خداوند گفت نمبر خدا، تلفن خداوند گفت که نشته ده چار, چار نو اینی گفت نمبر موبایل کس؟ موبایل خداوند یعنی اگه میگه که خداوند گرفت بزنی صبح نماز صبح تا چه درکات درکات پس؟ در کات نماز بیشی نمیخوام، چهار کات نماز دیگر نمیخوام، پنج کات نماز شام میخوام، نود نماز وقت دنی، در اینی وقت میتونی که خداوند چی کنم؟ نماز بیاریم. و و خداوند مطلق در هر جایی که نماز میخوایی سرعتترم شما. چون تو انسان میتونه که ازینی در آمریکا کب بزنه و خداوند دوای تو از یه قبول نمیکنه، پس از این خاطر میگن که لفتاً بر زیارت مزار یا به کلان زیارت دیگه این در زیارت دفتاً اینه علمای اهل سنت و جماعت اجازه نمیکن و میگه نظر به این حدیث شریف فقط پیسه نصف کردن و نماس خوندن به کلان مسجد فقط در سی مسجد به دیگر مسجد تو هم جایز نیست به دیگر مسجد تو؟ جایز نیست خوزی و ایسای و دیگر ملاقه دست و من باید باید. اگر آمی دوست داشته باشیم دکتر سام. آه نه دکتر سام چه خبومی میکنه؟ چه اخیری مثلاً ماجور میتوند مامزور ناریم حجمون ازش میبینیم. دکتر سام به خیابانی که آنجیو کلیشون تایربون میآوردن این دست ها میفتن بیا که بریم با او مازور. مولو مازور. ها. این بودیم مولو مازور نه ای کلمات که تو میگیم. میدونم دانشگاهونشون. وشیت. پس عقل عقل. یعنی انسان همیشه ممکن است فکر مثل دکتر اینا بهترین دلیل هست اگر این می بچو ذاتی پس باید آجر دیگه همه آمدن افغانستان ما میرفتن در مزار وقتی که در نماز نمیره برام بالغ میشه که راستن در نماز جزء حج نیست واقعیتونه آجر رسانم واسه کی میونن خیر بین دکتر دست باید خود آجر رسانم یک تکه مرضم میگیرن و یک تکه تو میگیرن صد با کیو بر نمازش والا با شما چقدر داش ک دا میب داس ک می به اگر می بد م فاید بها شما می خلاص چقدر دوکان ونجه جوړ میشده چقدر اونجا تجارت میشده چی میشه اما نیست نیست خوب انهال وقتی که اجي مثلا می که هسم کی مه کنه حج خدا خلاص کرد به مدینه منور ه اول سره نیتشگپ س نیت خود نگویم که من به زیارت پیغمبر صلی الله در نیت خود بگویم که ما برم بر نماز خواندن در مسجد النبی یعنی به زیارت مسجد پیغمبر صلی الله و آله. به نیت بنم، بعضی اجازه مسجد نماز خواند. باز قبل پیغمبر صلی الله و با زیارت البقیع میرم و در مسجد قباء هم نماز خواندن شده است، در مسجد قباء هم نماز می اما که اجازه حج نیست. Alleges, وقت که رفتیم مثلا قدوان ما شما را نصیب بکنن که چی میشه؟ وقتی که اونجا رفتیم بگه اول انسان میره به زیارت مسجد نبوی به زیارت چی؟ مسجد نبوی اونجا رفت اول در خود مسجد شریف این مسجد اون را را مسجد را را میگه. ویگه مثلا بایر مسجد من بری و در بین خانه روزتون من یاد جنه در کجا؟ من منبر و بین خانه این قسمت کار کدن است این آدم بگید نماز در این چه بخانه. و بعد از که نماز خان بعد از میره به قبر پیغمبر سلام سلام میتبر پیغبر صلال الله علیه وسلم و برای عزت و بکر صدیق شرا که در پیغمبر و بکر صدیق در نز و حضرت عمر درستان خب و باز باز رو میده با زیارت بقی جنت البقی میگه اینکه جنت البقی اونجا صحابه اکرام دفنستن و دفن دفنستن و از اونا هم سلام میگن و دعا میکنم دعا, دعا رحمت مثل که پیغم بس سلام اصحاب خدا بگفت که شما وقتی که به زیارت و قبرستان رفته چی کنیم این اینجا افراد تفرید در زیارت رفتن یکی میگه نیمه ایچ زیاده ایچ قبستان نمیرم ایچ نمیرم, نمیرم ای هم درست نیست. یکی میگه نه من میرم و اونجا مثلا بچه میخواییم و دختر میخوایم فلان فیلان میخواییم. ای هم ناروا هست چرا که بچه و دختر خواستن. بخیر از الله جل جلاله از هیچ کسی جازنیست حتی از خدای رسول الله آزازه. طریقه سنت پیغامستان چه قسمه هست که پیغامستان وقت شما به قبر کس رفت خبر پدرم باشه صحابه باشه خبر پدرت هم باشه پدر کلانتون باشه خبر مسلمان خواب باشه اول وقتی بجناب آدمو یا السلام علیکم اهل دیار مد المؤمنین و المسلمین سلام بروی شما اهل دیار از مؤمنان و مسلمانان و انا ان شاء الله فیکم لاحقن برزنامگی به اهل قادرسان سلام می دین السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین. یعنی yani سلام دمیت هم جسته بله مؤمنان و, بل بل بل و بل بل مسلمانها سلام بر کمون و برامون دو را بگردا ماشان و برام بیتی بگرماشه و برام کنداله کمون است باشه بر ازونه میاد مینی نه والمسلمین ما سلام میاد. و چه میگی و اینا انشاء الله بكم لاحقون میگم ما انشاء الله باشیم شما لحک میشیم. یعنی ما میمونیم. ما میمونیم شما کرد زاتن ما باشیم شما میمونیم. وقت کی دوانا پڑھی مرگی خودت به و ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا و العافيه سوال میکنیم از الله بجه جروح خودمو و بر شما معافات ما رو عفو و باشه با شما هم و اول وقت مثلا قبر صحابه کرام وقتی اول باید الیمی دعا رو و در حلوه دیگه پیغمبستان میگه وقتی که جلد البخیره رو میکردن میرفتن میگه میگم که ازالزار البقی یرحم الله المستقدمین منه نا والمستاخرین و از باید رحم بکنه با مسلمانایی که در اول بودن و مسلمانایی که در آخر هستن کل ازالزار بقی اللهم اخفل احل البقیل غرق خداوان دار بلای احل بقی غرق بل از بنا قلمند محضر وعده چیست که زیارت مسجد قباء را بکند و در مسجد قباء در قد نماز بخوانر اهل یعنی مدنی منابر کلام را رفت. رفتن به اونجا تاب سننت است به جای اهل النبی الله علیه و سلام که آن را زیوروه چرا پیامبران مگه وقتی که میرفت در روزهای شنبه در کجا میرفت در مسجد قباء میرفت و در اونجا ترکات نماز میخوان دیگه و قال علیه الصلاه و السلام من تطهر في بيته فاحسن الطهور کسی که مثلا پاکی کرد در خانه و قب پاکی کرد سمه اتا مسجد قبان و در مسجد قبان آمد فصل فیه و در اون نماز بخاند که آنکه عمرت مثل که عمره کرده باشند در که نماز بانه در مسجد قبان بسیار ثواب داده خب اینال این موضوع جاهایی است که مثلا انسان در مدینی منوار وقت کرد اما دیگر جای یزیک است و او تو کدام چیز نداره که بسیاری کسا سومی که موباید بریم ده، 6 بریم، 6 بریم، 6 بریم، 6 بریم، 6 بریم، و, و تو کدام چیز نداره که کس بگه؟ لکن مستحب رفتن اینمی جایی هست. خب، ایناها وقتی یک نفر به مسجد النبی صلی الله علیه و داخل رسید چی باید بکنه؟ mega وقتك يا أقمشة الرضوان دم زيتنا ببي الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعود بالله العظيم وببشه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان رجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك إن بدور ما وقتك دا داخل الله مفتح لي أبواب رحمتك الله عليه وسلم هم إن بدعاء مثل كده دا ما تجمع داخل ميشي ونمد دوره ميخاني ما كن دوای خاص نیست. بیزیری کساست که در دا داخل میشه، بیزیری کساست شلّه است. ایواردک دعای داخلش نالی دا مسجد بوده میگن آسلااموا علیکم در داخل شدند. سلام مشروعیت ندارند. در دا مسجد داخل میشه سلام نمیکنیم چرا سلام نمیکنیم؟ به خاطر این سلام ندید که اول سلام دادن که از اودا خانه است نه در مسجد. ودان راه است. داخل میشی، داخل شدن دا مسجد دعای خاص داره که اللهم تحلی عواظ یکی دو میز که دادن می می می سلام دادن، دعوایی که کسی مطالعه میکنه یا قران میخونه یا نماز میخونه برای سلام دادن جایز نیست مثلا میره چه جای که یک نفر قرآن از مشان متو میخونه میگه بگو تشویش نگیریک تو بیボル سر سلام علیکم شریک جان نه قرآن قران بی قرب ولی شده تو سلام ندی یا یک نفر نماز خب اینا تو وقت نماز داخل میشه کسی در دا نماز داخل میشه نماز دا بعدو چی میکنه یا ذکر میکنه یا نماز میخونه یا تلاوت میکنه، پس تو به از اونجا درم بده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و باز در راه که میبینیم باز نهیچه در راه خدا زدید تا تا سلام و با الیک نمیگنیم شیخی ناکی؟ شیخی, شیخی مادر یا برات بدت نمیده که داخل مزید که حقش نیست که سلام بتی چرا که سلام دادن در راه و دره را سلام نمیده یعنی نفس پیشتک میشی تو واز منده اما در دا داخل مسجد که وقتی که در مسجد کس اینجا دعای داره میشوند در مسجد میخواد و در مسجد کس کس ات و دخوانی دو که رفتی یا در جای دف در مسجدی که میادم درس میکنم یا مطالعه میکنم یا مثلا نماز میکنم یا کوران میکنم برای زنده سلام نبی تو که تشویش نمی یعنی استثنای سلام است خب بنظر وقتی که در مسجد بدراین بشر الله عزیز سلام داره میشوند انسان چی میخواد بکنه عاد دعای, دعای سلام بعض از اون در اون نماز بخواند زرگ بخواند نمازی تحییت نماز المسجده میخواند خب ایناله در اینجا دعا بکنند خدایی ما خیر دنیا و آخرت بودند اگر تانست در روزه مبارک بخواند روزه چی رو میگن؟ در مسجد پیغم بستم روزه، امو حدیث شریف است ما بین بیتی و من منبریم روزتون من ریاضی جنده در اونجا چی است؟ بخشی است، بخشهای جنده بین د و بین خانه بنان خانه پیغمبر سلام معلومه که اون پیغمبر سلام دفن شده و بنابراین تود وسط بواسطه از ازی بواسطه نماز می خوندن که خداوند یگانه که هدایت کنه من جویا نماز می خوام یک سیابوستم از سبب تو کاتکلی نبی مریم طرف پیدا کردن دو فقط کس از مریم نمیش نکردن در ک نماز فقط اون با که مشکلات موجود. شما زیاد که نماز بعد از به چينه نبي سلام الله علیه و قبر دیارش دیار حضرت از تابسلی حضرت نماص اونجا بدن تا پیشوی قبر بدن مثلا با ادب میشینه و با صدای پایین چرا که آیت قرانو گفته که واحد صدای تنا پیش قبر بدن برس پیش پاین بدن چی نکنه؟ اولا می یه گل گل کیچه قران با صدای پخته که السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکات اگه شما به استاد میشین با ادب که اگه السلام علیکم رسول خداوند من صلی الله علیه و رحمته ش بررس چرا که در احادیث آمده از حضرت روی قاله ق رسول الله مؤمن احد يسلم علي ايغما زمانی هر کسی به من سلام میده الا الله علی روحی و با روحی مرادت نکنه یعنی با ما باز میگه تا که ما جواب سلامش دادیم یعنی بوید و علی السلام هده پیش که بهش سلام میدیم اگر بگید مثلا اسلام <ترجم> علیکی یا نبی الله اسلام علیکم یا خیرت الله من خلقه اسلام علیکی یا سید المرسلین و امام المتقین اشهد انه یا خط بلغت رساله و عدیت الامانه و نصحت الامه و جا خدت فالله حق جهده اگر اینجا بگید باستیس لیکن خوبتر بایدارش اگر بگید السلام اسلام علیکم اگر بگید السلام علیکی یا چیز ریاض رسول الله صلی الله علیه وسلم خدس و رحمت و برکت اینو میتن دگهی، ا، چاسته، سلام سلامیدا. و ابد ازو درود میفرزم به بالا پیغام. مثلا میگه اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهیم و علی ابراهیم اینکه حمید مجید. دگه از از حضرت ابن ماص صاحب که وقت اونجا میموند، از دیگه چیز نمیگفت. باد ازو چی میشد و خب میگه حضرت ابن ماص صاحب چی میگفت؟ میگفت که السلام علیکه یا رسول الله باز بکر السلام علیکه یا عبا بکر و السلام علیکه چون آه... پدر جمه بیدیه عبتا دیگه ایست که باید آدم باید السلام به ذات عمره دو بتانه و السلام به ذات عبا بکر سدیه دگاتی هست ولی این خاص است برای مردها اما زن ها به زیارت نمیره چون که حدیث شریف است که لعنه ان خصوصا لعنه زوارات القبوری من النساء والمتخذين عليها المساجد بسلط میگه پیغمبر مس هم لعنت کرده بالای که به زیارت میرن یعنی من زمان بنا ایجاد زیارت بران لعنت خدا سر زنهایی که زیارت میرن و کسایی که لعنت خدا سر کسایی که زیارت مسجد جود میکنن. و جمهوری دزیرات نماز میکنن. پس از خود زیارت نماز خواندن هم جایز نیست. و بعد زیارت تو چراغان کردم. ای هم نارواه هست. ای خدا تازه نالعنت شدند. نیه که از جز شمسی ولی نماز قلهایی. نارواه نارواه. مثلا دایسل در دا طرف برکی سر میاد. کسانی ماجد صحبت میکنن. او خواستند قبر را خراب کردن اوچه چیز خواندن دیوار شده و جدار شده و چیز شده بوده باز علماء بعضی فتاها ویگرپا هست اما در جایی که قبر است، در خود قبرستان نماز خواندن نارواح هست مثلا در داخل بی بی آیشه را دلاتان خان بگیر قبر میرفتم تا وقتی که خود پیغمستان بود و بازدار وقت صدیق در شد وقتی که و مهدت مجد تو بازمان خدا پوت خود اینجا خود رفتر اینجا که مثلا در حالی شریم لعنت خدا سرین زنهایی که بزیارت میاد بعد از اونش دیگه که بعد از اون نیست لیکن قبل از اون که پدرش بود بودم خب. همین زنایی که میرن برای حشنا میبایست نرن در قبر ده چیز میرن در مدینه منور به نماز میخونن چلی نماز رو میخونن لیکن چیز نیست زیارت نم خانش می دارم در کدام خانه؟ خشت خمی بغل خانش هست خانش سهیسته اون جا که میره ده ده ده سهیسته ده ده ده اما به چیز نمیره خب بعد اون گفته که چیز شده بره, بره؟ خب دیگه مستحب است وقتی که کسایی که در مدینه مناوره میرن که چی کنه به مسجد قبا بره و در اونجا پشتر گفته که چی کنه درکان نماز بخانه بعد از اونگه سنت است و مستحب است که انسان چکنن با و زیارت چی برن؟ صحابه کرام که در اوجه هستن و برن مثلا اوجه قبور شهدا است، قبر عمزه را بهتان رو برن قبور شهدا و خود جنت البقی و قبر حضرت عمزه اینجا هم اینا را اگر برن و زیارت برن لکن به این أيام مثلاً مثل زور القبور فانها كذلك لكم الآخرة. فحين شو ما كنت زيارات بكن القبور، هي شمارا بعياذ بالاخرة ما يكون يرانا. هي الإمام المسلم دكان. وعند أيام مثلاً مع أصحاب خدمي وقت ما مع هك خمس السلام عليكم على الأديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم باحكون صلوا الله لنا واقوم العافية. أخرجه المسلم في <تصفيق> حديثه الإمام مسلم. دیگر از این خاطر به این و از این که رفتن به زیارت از نفتگاه شریعت اسلامی جایز است لیکن به انسان به زیارت میره حدث ایش چی باشه؟ حدث ایش چی باشه؟ من بیرون اونجا یکی آن است یکی است چی از انسان بیردن میبینیم صحابه این که هم چی شکل زرف ها از این دنیا رفتن یعنی ها یعنی ها یعنی چقدر مسئلات ندارد این اسلام دعوت کردن شدید شدن که زیاده اصحاب بگه داخل یه روز من که در نیاد کن بگه داخل میاره سکت بگه داخل میاره اگر ما شما یعنی روز من همین تو اصحابات همی زیاده تاک میر ایت مرمان، اصلا وقتی به یه حدیث خانم به دفتان وزیارت و قصد خمد است در گذر خشیشتون و بازه که سلام دارد و سلام علیکم حدقی آلینا المؤمن و مسلمی و لاحق. انشاءاللہ برونکم لاحقون نساللاللہ برونکم آفیان وقتی که خانم بازباد از شیشتون یک پنگ فکر کردم که موردی موردی موردی موردی موردی یادم آمد که مام میمارم مام میمارم مرگ با یادم آمد اما می‌سوزی که قبل وقتی شما بیمین دیگو وقتی سر قبر آمدند قبر مایی بختم یکی قرب سر قبر آمده کن قبر نیست تا یکی رفیم می‌کنم بول آورد یکی یکی دیگر قرآن که یکیش سر قبرها یکیش نر و سر قبر سانوی جو بودن ماری خدا سر قبر در حال که می‌گم برسنم از محفل گفتن در برای من منع کرده یعنی جایز نیست که کسی در سر قرآن شد خب اینها در وقتی که اینجا میریم به این قصدی که به این نیت باشد این خوب است اما به این قصدی که ما بریم از بچه بخوایم یا دختر بخوایم یا از اونا چیز تقاضا بکنیم یا بگیم که قبرها مریضای ما را شفا بدن اینی گفا باز در روچه جایز نیستن دگاه گفته که پیغمبر مسعم گفت زورل کبورا ولا تقول حجرا پیغمبر مسعم گفت شما قبر ها را زیارت بکنید لیکن حجرت نگنید حجرت چی است حجرت این است که انسان مثلا در قبر بره میگه تو مرا شفا بدهی تو مرا بچه بدهی تو مرا دختر بدهی تو مرا شتوگ و خاطر از اینکه هیچ کس نمیتونه که بر کس بچه بده یا دختر بده یا برای کس اولاد بده و حتی خود پیغمبرش هم اولادش fault میکردند خداوند بر شاولاد میداد میداد وقتی که اونها را چیز میکن. ای کل عمر که اس کلش مخالف است و به کسای میره یا مثلا یگانی که تکر میگیره میره در دیواله میشه و بازو تکر میگه برکتیشه و یه چیون اکولش کارای ناروا هست که انسان ده حج بکنه خب دیگه بعضی چیزهایی که انسان مسلمان وقتی که ده قبر پیغمبر سلام و صحابه کرام میره کدام چیزها ناروا هست که رو مو باید بفهمیم نکنیم اول چیزی که ناروا هست این که مثلا دست دادن و کدنش ماشت کدنش دروازیش ماشت یا مثلا اتاک ماشت یا دیوارایش ماشت که یا اتاک اگر بشت بشت بشتی بلکتی شد اینی ماشت کدن یکم نارواح هست یک نکر یک چنویی تیر میشه از پیش بابا قیدانی یک نکر خویزم ماشت میگر میدن چایی نم؟ میدن چایی نم اصلا؟ میدن چایی نماش میدن؟ اگر باز دسته من اگر سیفلیشن برشید؟ آخوز اینه بسیار ماش میگیرد اینه حالی ایچی هست میگردن؟ ایچی بگیردشو از قلبه ما بسادن؟ چون قلبه بارمانی بگیرد؟ قلبه بابا که داری نساختن؟ این خاطر ماش کردن مثلا دروازه بودن چو؟ وانا خد کرم حضرت عمر اگر فقط حجرالاسد سنگ سیاه را که ماج میگن ولی جوکه سنگ سیاه تو یک سنگ سیاستی هایی که پیغه سمت یک ماج میگن ما ناظر این بناد از خاطر دیو قبل پیغمبر صلی الله یا اینا رو همه башка دار اینا رو با خاطره اینکه ای صحابه کرام این نه کرده و صحابه گان اینا نکردن دیگه از که نارواه هست که ما مسجد پیش پر نمردم، میپر نمردم، تو بار ما بچه بودی، یا برای ما دختر بودی، یا ما مریض هستم برای ما جوکو، یا مثلا سران تو کلاجیستم، اینی کار کرده شناور است، با خاطری استی که بچه دادن، دختر دادن، اولاد دادن، زنده ساختن، شواد دادن، این کاری که است، خداوند جلوگر است، این ما اگر از میکنیم مسیح صلیب خواهیم بود، این نارواه است که پر نمردم، سعی نکش دیگه که از پیغمبرستم شفاعت نخواهیم که پیغمبر تو شفاعت ما رو چرا وقتی به خاطر اینکه پیغمبرستم وقتی که بود، از پیش شفاعت نمی‌کستی در روز آخرت شفاعت شمیبی شفاعت را قسم دوکو بگو خدایا شفاعت پیغمبر ما نشیم ما چون شفاعت بعد دست خداوند است بگوی خدایا دیگه وقتی که حق می دی به شفات شفاعت من هم از مره شفاعت رسول محروم نسازی چون مدل لذیه شفاعت و هندوه ایلا بیدن کس نمیتونه شفاعت مکنه بخیل بدون اجازه ازیخاته قلیلله شفاعت جمیعا لب مرگ و سمواتی و الارد ثم الیه ترجعون سوری زمان آهات چلچارون قلیلله شفاعت جمیعا قلیلو که سای بخلاوان در نماز همه که ای بر نماز همه ایگه ای بر که لله محسوس الله هست شفاعت محسوس الله است. بغرس الله از او اللهم شفع فی نبیک الهی نبیتا پیغمبرتا شفیم بگردانی اما که دعا کنیم؟ به الله خدای پیغمبر سنجا و یا مثلا ملائکه یا بنده های صالحی در شعادار و مجایدین این رو خدای در حق ما چی کنیم؟ چی هستم؟ به خاطرش، که خاطر اینکه در صحیح مسلم ابو هريره رضي الله رسول الله صلی الله علیه و آله ابن آدم وقتی که یک نفر خلق میکنه، انقطع عمل و عمل چی میشه؟ قطعاً میشه. الا من ثلاثا قطع السجيس، صدقه جاریه، تو مسجد جور کردی، برد. اما تو ثواب رسیده میره؟ او علمون ینفعوا به، یک نفر عالم داره از علمش مردم استفاده کرده، شاگردایش هر وقتی که یه بدی عمل میگن ثوابش میرسن. اول هم صالح میاد اولو گویا هر نگار یک اولاد صالح تربیت کرده بود که اینکه میبره اولادش واسه دعا میکنه ادامه اولاد صالحش یا طلبش جادش اینی اما دیگه کار انسان قطع میشه دیگه دیگه کارو میشه از خطر پیغمبر صلی الله علیه بود مردم که پیغمبر صاحب دعا کن خداوند که شفاعت تنسیب ما بکنه وقت پیغمبر دعا میکرد به شفاعت ما در حق قبول بکن در روز آخر ده وقتی ما پیغمبر سن ببینیم میریم جامعه دید رسول خدا صلی خداوند تو که شفاعت کو شفاعت ما را حمل اما اون بچش قلبش وقتی اونجا اگر تو شفاعت پیغمبر خدا شفاعت ای پیشمبر الله اللہ وآلہ وسلم نسیم مرگ اید دگه این چی یاست دگه بعضی یکیه از بیه دی که مردم بعضی کسا میگن بعضی از کسایی که مقطع می با صدای بلند چیت میدن در حالی که یا ایوب الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقهر كشج بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اینا بل خداوند متعال بر صحابه کرام گفت شما در مجلس پیغمبر ص با صدای بلند داد نزنه سلام بچو من عاشقمم اے رسول خدا سلام من یک سوال دارم بہت سوال ا رہا ہے انولے انول وقت کہ پیش خبر دینا مثلا وہ اس طرح میں اعرف چھا کی جائے کوئی کہ پیش خبر پیغام سنوں کہ ایک پاکستانی یوم شروع کرے که یعنی سلام علی کے نفر ہت چپ است احمق چھے بیچ میں نہیں اردیں ابھی خاندان یادہ سلام بلا شروع کرے اپا سلام انابی السلام علیکم شجاع صاحب خدا سلام علیکم یا نبی اون قربان بودی اور جدی هستن اگر کسی کار نہیں ہے سلام دے کہ قالے کوئی قبر دعا نکنید وقتی که انسان گوجے گرفت وقتی سلام بولے پہنا بس سلام دادی سلام پر صدیق دادی سلام با عزتہ مند روح طرف و بعد متعال شفاعت بین در روز قیامت نسیم اون غنی الهی موره همس عمل کردن در جزای مثلا دعا میکنید درخواست گویید به طرف چی بشن از خاطر چرا که پیغمبر صلی الله علیه وقتی میرفتن بیچاره به پیامبر سلام سلام که میدادن بازختك دوام دارید که کدام ترک میکردن؟ نترک میکرد. و بعد مثلاً علیکم علیکم و سنت الخلفاء الراشدين المهدین من بعدی. ایجع علیکم علامای میگه علیکم واجب از طریق و با طریق بدرسال الله علیه و و طریق امی خلفاء رشید. به نام خلفاء رشید امی چی دوو باز میخواد خدا بلام طرف میکردن و طرف مهمان میینه ان خاطر انسان چی کنه و این کار یک مسافت رو رو طرف قبله میکنه که پیش زیارت بخاید کج و رو میکردن و تعظیم کردن و رکوع کردن تا دو ثانیه قسم میگیدن دمی دم پیش قابر دوباره ایش درست نیست این تاقتی ای ای خوده که است بلکه میشه با الله میشه شده نماز میشه رو جهت طرف قبله دارید و دوو بگو هر چی میخونید میتونید این چش بعضی کسی هستند، در کات نمازد، بسیار کسی رو میگرد اول خود باید یک قسم میگرد، باید دو اوشی قسمی میگرد هیستش تا خود ما بسیار که کاتیان در کات این سر اطیر از کدام شیخ باید اصلا خود یا که دستان از و سر است که چاپوند بطریقی نماز به پیغمبر صلی الله چون ما مسلمان ها نماز به پیغمبر صلی الله ما نماز به کی و می الله میران که استناد میشیم و در مقابل خداوان این تواضع و عبادت میکنین بل بلکه میگن اما بر پیغمبر صلی الله است با صدای چی و بلند نمیگن و صدای پخش میکنند سلام خب از که اون هست بیشتری کسا از دو قبر پیغمبر مسئله ای قبل سلام علیکم یا از دور تو دو به قبر پیغام اصلا دوام نمی در شریعت نیست و اراده باید چیز کنم وقتی که این رو باید نکنم فقط در پیش قبر باید مثلا کسی بهش سلام میدی و اون که در, در کرده دی چیز خب دیگه چی دیگه است چون طبعاً مثلا رفتن شرط در حج نیست واجب نیست و اگر یک حاجی نره مثل که بعضی از ما هم میگن بلکه یک کار مستحب است که حسایی که از مدینه دور هستن اگر رفتن نمیتونن یا مثلا مشکل دارن که چون خب. جو بده رفتن نمیتونن یا مشکل اله ده حاجشان نمیشه چون بنابراین مثلا و وقتی که تو اونجا میبینم خوب تر است که بعد میاد چی بنیته نماز خواننده که نماز خواننده که با نیت و باذری من نماز کامل درقوم نیت در خوبه نیت نماز خواننده در مسجد النبی صلی الله علیه و آله درگاه با نیت چرا که این حدیث شریف هست که لا تشتر الرحاله در حدیث شریف شما چین اپن فقط سا... قصر سفر دار مگر مگد بس مسجد که یکی چی بود؟ و فی صحیح این در حادیث امام مسلم شده که انا نبی سسان قال، لا تشد دور حال، الا الى خلاس مساجد شما رحلت نکنید یکی رحلت علم است، یک نفر از یک کشور به کشور دیگه میدن، یکی رحلت بر حجز، سفر حجز، یک سفر علم است، و یکی سفر دیگه اقوادت خواست، فقط بسی مسجد بجاز است، اما بجوار دیگه، رفتن اجازه هست ازی خاطر حتی در مجام بودم بیره به نیتی نماز خواندان در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم گفتن دیگه گفتن که شما وقتی که در مسجد هستید لا تتخینوا قبری یعنی قبر مادر ایتگاه نساست ایتگاه مردم چای میخورن و نان میخوان و خنده میکنن چی یعنی چرا قبر مادر شما سوزین ایتگاه نسازی یعنی شما پیش قبر مادر بیانین باز چای بیادین باز آب بیادین باز نان بیادین باز یکی دویه من چله بیهون دیگه‌چله بیاد راه بوزن بتا که لا تتخینوا عیدا ولو بیتکم قبران و خانایتون قبرستان نسازه در قبرستان نماز خوندنه نمیشه پس شما در خانای خود نماز بخونید و صلی علی و باله و درود بفرستید فاین صلواتکم تبلغنی در هر جایی که باشین وقتی محمد درود بفرستید درود تا بعضی از احادیث است که گفته که احادیث بن هست که اینه بعضی از کسایی که با علم حدیث چیز ندارن این دلیل میگیرن والا اینی حدیث حدیث حدیث حدیث اس اس يزلنی يزلنی این حدیث هست میگن مثلا یک حدیث هست که حدیث موضوعی نمیگن حدیث موضوعی نمیگه پایرا نباشه اصلا نگفته بعضی از ها با دروغ پر پایرا نسبت نسبتا مثلا یک حدیثی که دروغ است و حدیث نیست و ضعیف است من هر جا ولم یزرنی لم یزرنی فقط ژاپنی که میگه یعنی حدیث است که حشمت به زیارت منامه که ما ژفا یعنی این حدیث نیست این یک سخن است که مردم میرسل خود ساختن یا مثلا حدیث دیگه که گفتن من نی بعد من ماتی پک انما نی فی حیاتی بعضی هم این که اینه پک انباشت که اگر کت کسی بعد از مرگ من مار را زیارت کنم مثل دیگه در زندگی من زیارت کرده یعنی صحابی ما شده غلط غزات این حدیث از حدیث نیست. این میگه بعضی دروغگو yol کردن. دیگه یک حدیث دیگه ساختن دروغ ساختن میگن که منزا را نیوازا ابراهیم فی من وحن که از زیارات ما را که من زیارت قبر که ابراهیم از در حساب بکنه و من او برو علی الله جل جلاله ما ضمانت جنت اش می کنه. خلاص یک کار که باز به خودی بک و با که این دروغ است. دیگه این حدیث نیست. دیگر میگه منظور احکامی شفاعتی کسی که بازیارت قبر مرا شفاعت ما واجبش میشه میگی ام حدیث نیست ایس خانوی است ها دروغ گفتن فحاظ حد احادیث و اشباحها لم یافت منها شیون عن نبی صفر ولی چی میگه میگه این ثابت نشد که برهم برسه این حدیث گفته باشه و قال الحافظ ابن حجر ابن حجر عسقلانی عالم بیشتر و حدیث بزرگ است او احادیث در کتاب گفته گفته که طرقوه هاصل حدیث کل كل ضعیفه. گفته کلی حدیث عهادیث چیز؟ که فلان و فلان گفته و الله یسحفر به باب شيء گفته تی جوابیش و انسان مسلمان باید مطابق اینمی عهادیسی از پس ما و شما خلاصی کل ما ماییو شد که وقتی که به اطلاع حاجی میره اول گرفت به نظر ما می باید باشه که رفتن به مدینه منواره جز حج نیست اگر کسی از زیادت به اطلاع رفت و به مدینه منواره رفتن نتا حجش شده چرا که واجبات و و مصطفیبات حج کدا؟ در کجا ختم میشه؟ یا منکی برمه ختم میشه، خلاص این همین حج رفتن را ندیم را بله جائز است، مستحب است وقتی که اونجا بیریم اول وقت نیت خدا درست کنیم بویم که خدای ما میریم در مسجد نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم نماز بخون برن، خانجی سرکان میرن نمازی نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم چل نماز میخونن؟ چل نماز؟ دو اونجا میرن میخونن؟ این رو اونجا به این نیت برن وقتی اونجا به این نیات رفتید، بخاطرشی که پیغمه سامون بودم شما بغیر دمیسی مسجد، بعد دیگر نیات سفر عبادتی دیگر را نکنید، یکی سفر علیل مسجد یا سفر حجز که با مکیه می کنید، اما دیگر، خب، این حالای این شد؟ نیت ما رو جور کردیم. بازمیگه که رفتیم. اول چی میکنیم؟ اول میریم دا داخل مسجد. درکت نمی‌تونی نبی ساسان نماز میخوانیم. وقتی که نماز خانیم درکت. اگر بتوانیم دا داخل داوودی شدیم، پیغمشت میخوایم. توی که بین خانیما و بین ممبران داوودی از رئیس جنات هست. ما جای خوب. اگر دیدی که بیروباره شدی لگا کانش کس عزیت میشه، در هر جایش که بخوایی خداوند آشده میده که باهت درکس اذیت نرسیدی. دگه است که وقتی بازرویی سلام میتی بر با پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام با و سلام میتی بر کوتسیدی و سلام میتی بر حضرت عمر رضی الله عنهم فقط سلام میتی وقتی که سلام دادی بازرویی تا کدام طرف میگردی طرف قبله میگردی و هر چیزی که دعا کار دعا میکنی و به خداوند متعال دعا میکنی خدا شفاعت رسول الله ما تو نصیب ما بگذره دیگه از قرمایی که ناراوا هست که از پیغمبر خواستن یا دوطرف خاصان یا شفا این کارو نمیکنه دیگه اسماله بلده هر پیغمبر پیشخوا بود اسماله میومد ماز بود اینی یا بزرگان بود تو پات یا اسماله خدمت ده اسماله ولی سبب واظن بیت الله شیفت بود فقط کاری کس نگید مجاز قرمایی نمونده ولی تری میگه واظن میگه واظن مردم میگن این اسماله گلسه ما ها میکنه داره که دیگر این یار جهنته بلقی میرید قبر حضرت ابو صحابه کرام جو قرار است و اونجا میری و اونجا هم وقتی که داخل میگی میگه السلام علیکم اهل دیار المومنین و اینا انشاءالله الله من المومنین و المسلمین و اینا انشاءالله شاء لاحقون دیگر خداوند شما را ببخشه و ما را هم ببخشه بعد از اون قبر از ما عبرت میگیری بعد از اون از قبر حضرت امیر حمزه رحمت الله علیه میتونی مجا میترید به قبرش حدا برید و در مدینه منوره کرم درکات خوانده تکرم مسجد دیگر والصحابه <تصفيق> سواء <تصفيق> دپارتمان صحی قهوه که وقتی که هم انسان در کد نمازخانه و بنا آن را قطعا به قبرستان جزء حج نشد و کسی که باز لباس علجامدی حتما باید بری در مزار شریف رفتن به مزار شریف جز حج نیست و کسی که فکر میکنه این یک کار غلط است و در عبادت یه داخل کردن این تا انسان تا تکلیفش به ضرر میرسونه و اون دکتر صاحبشان خوب گفت اگر بوده جزء حجمی بود یا اولش شامل حجت قم مدینه مولانا برد نیست و اگر به فرض اگر بود باز مزار شریفی بود پس باید طول جیو دنیو نمیدم به خداوندی حجیت کردنش نشده. هرچه وقت در مذهب احوال نشان دادن میاد، جمعیتی است میتونه کلشام که در بالایی است نه. از این خاطر، دیگه ایناله ایده هر داخل نیست. از این خاطر، اگه در دوستین داخل کردن ناروا و غلبت است. جل مطالعه کن لجرو کل موضوع ما رو تافیق بده که کار را برکر زایت الله بشه. آمین. پدرم بسال الله و دیو بسال شما باخداوند مطالعه هوم میگیم کلای کاروار ناگهان ما از کنار آن الله الهی شریف بگذردان و ما هم نصیب گردان که در مسجد النبی صلی الله علیه و آله نماز بخوانیم و خدای ما ما اثر توفیق بده که اعمال اندی بکنیم که رضایت را حاصل بکنیم و آخرین کلمه‌ای که زبان ما مطرح خارج کلمه کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله